كتب باشترين هاوري خمد نوي كتبو قران بنيو حكمتاكاني نوسيندا كتبي چشتي مجاور نوسيني هجار مكرياني خمد نوي عميد علي مارکردنی دلیر سلیم گگرانی عزیز و خوشویس سلامتن لبەت خوشحالین لە <متصفح> بەشی 22ی خویناوی 166ی مجووری حەجاری مکرانی هاتین ولاتان فرمون لگەڵمان بن حجاري مكرياني بردوام عبير لسر يرانوي سرقوزشتي جياني خوي لوقتي بداو باس لو ساتانيكا كلاقل سيد ابراهيم بسري بردواء لبغدا اندالي شويك لخزمتي سيد ابراهيم دا دا چومو مال لپلکانكان فرموي وپیشم كوا لسرکوتنا دو پشک يكم ديت پیم رايخست گوتي اواج سبو وتم دو پشک بو كوشتم با پلکانكي دي کدا سرقوتو استاش نيويرا لو پلکانانا و سرقوه له همومی میوانانی نانی تعریف تعریف پهلواناتیو نترسانی منبو کتوانو مدو پشک به په لقب کوجم روز یک له حوش دیوان جن و او بو رام کرد دیتم تو توله ماری خی کی باریشان کلکی مارم گرفتو لکوند رم کیشا او بوم کشتن ا دی کار همو روز دهن ګوت افندی توي دیوې نشانی میوانانی دم بروانن او کرده ک ماریش لکوند نیو دو پشک د آخری وای ورس کردم دی نرد لدوم نده چوم. حاج کرامت چلو پیان سال بو لبغداده جیه. قد چور کلمه عربی به باشی فر نبو بو. باشی اللبیر بو که سالک روز هاتو نخانقینو چونکه که وکشو من قاتی و گرانیان با پیوه هاتو و وشکی با او خواردو و شکری خواه کردو و. روزیک بیانی چوب و نانی گرم بکره. گم بو نهاتو و. افندیش شوا. تلفونی بو همو پوستو دست و و ما شوشت پاش یعنزه روش بیانی با باوشیک نانی و لیمان و جورکوت. وتمان حاجی چت بسر و وطی والا یوم لیه بو شوفیران با گرانی دین گود هرچی نچه تا زیارتی سلمان عمری با شو. چوا و بیرم حتا زور لمیه جنه چومه او زیارته با پیه ملم لیه روش گیم سلمان پک حاور روش لیه بومو با پیهات نانم کری جاور زاری افندی ب افندی نخوش کود احمد هندیو من بوینا درکوان که هرکس دیتالای بی پرسی او ریگه دین. لو بی کارید درکوانی دا مرخم خوش کرد عربی کتب فرم منجده که چکولی دانشجویان که عربی به عربی و حسانه پیدا کرد جمعه که مجلی هلال مصری که درباری احمد شوقیبو دستم کود هر وشی که نیزانم لفرهنگ دای دوزمو بمیداد دبن مشاکی دادم وادربو هیچم هرله نه زانیبو چونکه مجلکه و اکثر بر ترجمه کرا بوابو بمداد من سرتاپای بور حلق رابو لو ز احمد کی شانه به و چانم ده که همیشه جګله وختی کردم خندوا تا اندازې کی بش خپل عارمی راهنه پروژه دروشه کی کوردی سیدی پارسانیت وتمن رتنی ببینی او شوتی کرا و درنچی ځه وتوانه پیښم کې بګری برون پی به جن من چومه ګیلن زیارت موسی جنگی دوستی باو چې غوسم کردوه سلاوی او بو غوسی کورې نه وا بخوا تم خارجې کرانم پی نه دا لګرنه بزمو چاوي شي درتیرم چومه جور بو افندیم جرايوه زوري جنودا او اند شي ګوت او کوردو خزمي خوت به ترداوه مې فرمی چی لیدم وتی نه نه دوام لیک امرم بچور رازیب ک بلان کمی بده به هزار چاقو تف در یش به نیو دینار رازی کرو شلطاقی به افندی نما افندی تا دو رو جنج به موسی جنگی باپیری دا بودیاری با کی بای نردوا کاری منو احمد هندی جگر تشریفاتی بردرگا دا بوای اگر افندی کاری اودستی بوای بچوار دستان بتخته و حل گرینو لبردر که اودستی دانینو پاشان اوابی هنی نوا شوی نکه خوی کل حسر بو لایمان حسین درکندم که خوردنک من تیر چی بکن؟ چو بو گتبوی فلان کس للا دروه، چون دروه، ادی که ماستاون بو دروس که؟ با پولیس داله بیگرن، سربازی نکردوا، حسین بگجیده هات بو، شش دیناری لسند بو، گوتي، نا لای او خیار ریبی، نا نیکم هر دبی تو بیخوی، بو کاریش خوا کریمه، هر لو درکوانی دا جاریک جلال طالبانی که تازه خطی سمیالی حتلامو بو با اشنام، کوری کش بناوی عثمان مجیدی کوی دیت میو گوتی حزدکی لفلسفه مرکسی شارزابی منش وطم چون حزناکم. چند ناملکی که دامی؟ تی بی خوینه و. جاره که تر حد وطی ماموستایک من بودیاری کردوی زور زنه ای. بچو لفلان خواه خانه بی باشد فیركا. لاوی که سمیال زردی سرچکولی چاوشین و عرب برلو درسی که بلای فرموی کارت چیا وطم نو اویشوتی ملی عرب. او بیلی شووینیا. منیشوتم کابلی که بغدادی. وی ملی بغدادی. او سیاستی اقلیم. منیشوتم عراقی و بازمان مرقس ناکا. وی اوش ملی. دنیایی که او استعمار کرد وقت چن بش. خلاص وقت بیتی مشو لیلهات. هر من بلیم. او بلیم ملی. وقتی درس بسرچو. به جمیشتو هر لبرخوام و دمجو. ملی ملی. اسما نم دیتا ها ما شون بو. نشویم چه لوا بعشر ده به ملی ماموستا اول سیاست تباقیه که بون یه رای و لقای پیکانی ندا، و توی بخوانم دزانی کری او حاشیه راجدواری هات و کمونیست کانی بالا زور لوس مال زرده تو ربون، و توین قرار ماموستایی زور زنال لخواند بنیرن ایوارد دیتلات ماموستای نو نوی احمد بنی خرانی بو چون قاوقانی کویی اتر نمیل کو مامیلکت پی نوی. هر چی مرکزیت سنگم ده، حمود لبر پیدا می‌کنم. ملی نال لباسی کمونیستی بنا دمی تاریخ که ل نامیل کوکیک ده خوند بوموا. بر ل خسک کردنش گویی دزنی دialeکتیکیه و تم نخر. و تو معنای وراموپرسیاری دم بدم تقریش ورنمینه. ل سرخ سکان رویش، ل جیانی سرتای ده، هندک فیاضی تنبال پیدا بون. قطعی نه ایماراسپرده خود اینو آسمان ایمیکرده تجورتان چهوسان دویان ناو، با خویان خوش جاون. می‌نوشم، ما ماست، اجازه‌های قسمت کم، و تو ایدیالیک بیشیه. بله، و تو لامبارو، اوگوتمان موسا خیک دو تا سر و محمد دولتی با عرب دامزران دو. بلامبو مسیح دلیچی که حتی کجرا و نانی شوی نبود، به پی خواستی و به سواری کرد گرایا. چهوسان نوی خالکیل شود دعه، و تو ها کبریک تماشا منده ک. نا و کجا جاسوس بی؟ پابروین، پابروین دوای جواب دادم و او، استاد، استاد ماماستان هات او. اسمن گویی گذرش تیداو که آم کرال دردی کنه پرسیده خنک او چاری بکس نه؟ پاش چن سالک دگال چن هواگ توشمان بوده توشی او. گویی دل خوشم که من, من ما مستاد بوم. لبیر تا منی شدم. باله بالام استاد کم بی جواب استا کم بازدید نم. او پیا ول ماماست حرب پر حزب پښناوه یوک محمد حسین کوتی آشنا که اکاس میا دلې کارم بو دوزی توا اکاس برډ میلای وکې لکی دات ګستری په حودینرونیو د مزرام کروجانه دفتر کې خوین کوم یواران ال پښ درکدانشم چاو نو شابه بو میونانی بینم شویښ له دفتر بخوم نیو راین دینر دم مالی خواردنم بو ده نهو بشی منیشی شد کړ زور دور بو دو وای د اتوبوس وګورم زورش په پیبرم زور من دو عبوم. بلام ناني نوروكم که درده چو رازي بوم آغاكم ناوی ابوت شالچیبو وکیلی وكیل اكی زور پرکارو زور دولمندو اشرافیو لعزادی خوازان حزبی چادرچیبو، چی بو کتب زوری لدفترکه بو کتریه که برخی هبو شوانه چاملیه ناو کتبم دخونده و یک لو کتبانه خوند موزور مخوش دهات نوسراوی که ادگر سنو بو کلسر جیانی منالی ولواتی موتسی تونجی نوسی بو ناوی اگاه کم زور هوگری مطالع کردن بو تنانت کده دشوار سرپیش آیش شته که دبدر لبی خواند تو. راجعو تیی وربندی که شکانم تند کوا کردم. ملام هستی کرد که زورم بالا وگرانب بو. اتر وازی لم کاره نه. دکتور ناجی مراد ناویک هر لو اپارتمنه دا بو فراشکی روشانه کلبی مرستان دگلی بو ایواران اویش دگل من لپیشخانه دانیشتو بو بوینا آشنا بو یرامو و کاروش یک دکتور به عربی کی دشتکی گوتوا برو خروجت بینا اویش خروج گوت بوی خروجد بینا اویش گوت بوی خروج گوت بوی گوت بینا معاینه بکره سبای کابرا بخچه یکی گرانی پی بو شش کلو دا بو گوی لراجنامیگ دا نبو بخچ دکتر بانجیکل، سلمان و رمیم دیاری به هناین لیورگرا، ایش کتبی دکتر بیبم ما و مالا خوتن دکتر کتبی نخیر با مالا بابا سکب بابا کد آقام روزانی جمعه لبیان و دهات دفتر کرکی عربی دگل خویدی نکل اداره دائم زرند بو دیگه تو برو بو تا تئورم می هستم حستم دکتر که او کرده دچرگی بگانه بودینه تدفتر رو آقای وکیل خیانت بشه نخویده کاو حزیج نکام من بزانم. لو روجندا بغدال پر وګوم خوینه لहात خب شندنی خلق د جی پیمانی پورتسموس او صالح جبري سرک وزير لو پري توجم دابو روجنه بو چنکو روک چیک لسجاد نه کوجرين نيوروبو له بازار بوم تقا قومه بغیر حاتم بګمو دفتر تفنجان تقاندو کابرا چن لنزیک منو کوشت خوینه لبردچو غرم داسري کبل کو خوینه کې وبستم له پر قوندغه چن په پښتم هر اون دبو نه ب کومه کومه رام کردو خو م ده دفتر هویشتو شالچی زنی له خوشندنده و ام بسرعته وتی توش سرد لو کارانه خوري لو ساوه زور به هېدی تر دی دواندم پروژه کبره کی رش سودانی دگل گلخوی هینا اما یاریدت دکات تيګې شتم ک رشې من چادرو دفتر دو کس نه وې حسابه کم کردو خو حافظیم لکر خر هات موا معلم حسین بهوی دجاتی دولته خوبشندان سال 1948 وتندبشی او سنی ببنبره کامیونی کی زور لبر برګای غوس راجرا بو هر اندکرد ک د تنجف هزار رو تو پوت اولاد خو یان ک پلاود خوین سر کړدم لا ته ها ناوګبو وتم حزدا کمبم لا شو فیر دګل خو سواری کړدم خوم لا پلاود چوما اوتیل چوما زیارتي امام علی لکابره خاون او چلم لولاتی امدالین امام لسر امرگده فرمویا مم نیجن دنبن. عرب دنبن. عربیگ باوشتره کسپی چاوراشوه هاتوه تر میبردوه کس نازانه قبریله چوه. کابرا پیکنه و گوتي ببخشا دیارا لولاتی کرانه و هاتوی. امام لکوفه مردو. هنه یعنی تا او تبکه سیالاو نگریتوه نجف یعنی تپولکه. محمود احمدی اشناکی سولیمانیم نقل کرا بو بغداو لعیداره آموزش و پرور دا و تی نامه یکت بودن سم بچو کوت لوی کارت ادنی. نامم دا با مهندسه کی کورد کناوی نوری بو. ناوی با بیشیم لبیر نماوا. شانی بسه کلا بغداوا گیشت مکوتو لکاراش دا بزیم کلو پلکم دزرا زوری با گرایندیت دیت مانوا. بلام کتری چالی نانم حرفوتاو زورم خم با خورد. مهندس گوتی امشو دگل بخشوانک کبا سبای فکریه کت با دکمواوا. مهندس چن میوهایی باز میانو لوسی ها بون باز میان بو. دو ماسیان داو بباغچوان بیبر جن ماسی لسر آگر بون باغچوان گوتی نویش دکم آجات لیبن چقل نیان با ل نوش خلاص بو بجامه یش کردی هر آی آی چقل بردی پیم سیر بولن او شر شده آچقل ماسی بره بیانی مهندس نردمیله چن کارمندی کدگلیان بجیم ما و یک مامو کوت او شر یک زور پیسو پا خلو لشر ناشو تنیا کابره روزنامه روشنامی بغدای دیناو لقاو خانه بکری ادا. تاو چوار خطت ندخونده و دیسنده و دیده بایی که کیتر. لکوی نان بخوم کرمندکان برد نو و بازار. چشت خانه یکی نشاندم که ایمه آبونین منگی چوار دینار ادینو هرچی بمانه و کابره بی دو جمع دخوند. بو ما آبونه، سینما شبو، هربدو روش فیلم ده گوره، روشانه بیکار ورز رزده بون. دا چې مسله سد غراف سیری ماسيان و قلقي ماسي ګریم د کړدو پېدې خفلم روز یک چا مله بو عرب یک برو کوتات بوختي چې د بن حلګل دا بو گېشت اثر پر دې سد دانشټ جوتې کوشي له بوخت درینه خاويني پایو هسته وک جنالدی یک کتازه پړن بهر د پېدکا هر تلی بو کردیو نیکرد نه نی کړ نه توانې بروه دانشټ نه خوبشاندان دشه ساله جبر لکوتیش بردوان بو دروینو در با تکرائی دان گوت بکوه بکوه عربیکی روتی پیخاوست که لکنه رو ویست ابو چنجار حواری کرد یخوا بکوه دبا بکوه پرسیم ماما چی بکوه؟ اویشوتی دینار بکوه و من حالی گرموا لکوت دگل کرده کی کوی و کی کردی زنی باش بو ما اشنا و خوشم لدهاتن کردکنایی احمد حوازی و عربکنایی خالید بو روزیک مهندس گویی دات نرمه بدرا یانجسان کرمان هست. بعد جوانکه تیگیدم که او دوشارع آین سواره هوايان زور پیسه گوتم ناچم گویی داشی نومنیه. که برای چه ویل دگرتم. گویتم بله داشم. دگل بنای کو در تاشک داشم و نومنیه که اداری پولیس تعمیر کنن من سر عملبم. بیست فعلایی که عربی دشتکیم تسلیم کرو دستمان بکار کرد قانون دبوعی کریکار روژانی لچارک دینار کمتر نبیو هشت ساعت کار بکا بلام عرب گوتنی کی دبیو کی دخوینه توا فعلا دوازه ساعت کاری پیدا کرو کریان روزانه سی پنجایی بو هر وا یک دو, دو روژ هستم کرد کریکارکان سرطه دکنو لمن من منیشوتم برا او چی اوي شوتی دلاین او کبره هیچ لاسر عملي نازانی زني پیش تو قسی خوشين سګي کورې سګباب او قهبدایګ بو تو هیڅ نیو من, جگل کاری کاری من پی ندي جګل کاری دولت کاری خوته من پی نه زور زوپی ما سيره منو بناو دارتاج لو تاغه کی چکواله د دژن کریکارج لجور کی زور بر فراوانده که انباری یچو سیمانش بو دنستن هر لبر بیان و تا تاریکان د نو و خولدا حل د نیو روان ساعتیک فعلا داروجنی ناو برنج ببر لکود دفروش د فروشر فا لکان داروجنی دخریو به بر د ان کو تنکی خراش به اگری کو نه قامش دان کرد دي سولو د خرد کوګ زهری مار طالب روج یک بخشدار شهر وتی اگر هندیک یک مالکم تعمیر کنه وممنون دم وتم باشه وخت یک بد زم پیری کی زور ناس کو همنو خلکی نجات وو وستی نجابت بنوینی باعملیش یوت تو زلون انی خوتم ده گوتم مخو، نخیر وری گرتو نه ادمی دست بجت فکرد و گوتی تالا، نه خوری، چاوملی بو فرمسکی دچاو تزا ملی نه لجویندان بو دولت دولمانده خواه نفت و هاتی عراق که هشتر زوربی دشتکی عراقی نه توان هست نبی نانی جوب خونو پنا با دارو جنده بن سبه اوروژه کریکارم برده مالکه بوانیوار رو بو گوشت قلمون و خورشتو پلاویزوی دینی گوتم جناب تا چند روش تمله دارو جانکه نکن و تازه تا مردنی جمع کیوا مگر دخون دا ببینن. روز یک دیتم با کریکاریکی پیری کولکیش خیزی زور دکن گوتم خطریه او پیره بگرین بری زور مکن. لو روشی و بو ما مقدس یانو زور بدل کارینده کرد کلیان نرنجیم و روشی بیز جار بسی روحم کرد نکم یان بو یکترده چرایه وا. روشی کریکارکن گوتیان کرمن با قبل بودانیه. زودتر مرا خسمان که که جیش کاری خوان بزیاده و کرد و سعا چوار گوتم بچن. پاشتاوی گرامو گر خورمه زهدی لپیش بو. گوتم خورمه زهدی کلوی بچوار فلز با جیش نکردن نبی. ایو فریو تند داوم. یکین گوتی چون نبی. با امام حسین سوینده که ساله که دمونده ندوا. صد و پنجا فلز برج نمالم کم یان خورمه بکرم. شبکه باران بود دکل در تاشو بنام با چراغات چون شواری کترن لطویلا کنی که اداره پلیس چهار کتر منگرد در ترجوتی کریکاردیم پیچه دکم منشوتم دو کتری بده ایشوتی کتری چی؟ وتم من رازی نیم بگرپ کنم ایشوتی برا تو توی زور رازی بنوکیفیا ساز ب د بروانه بدر نوشی لکریکارکان هینا پاکی کردن لرخی مندو بونیس هرو پیو ریخوالی کتر کانی بردو هر جمله کو نه کو خوم نه ګرتن یګ دیګو کو نه قامیش به سوتنین سر کارګر تور ده به او نیترل دینګو بزن چدکان لاغه کوټر یان کول کړدبو سرکان یان پاک کړدبون ریخولایان شوشته بووه خسته بو یان سرتنه سر اګرو هر بیست یان خوشیان ګورانیان دګټو چپلین لیدا عزیزان و عشنایان کتب دیرده حتی نکوتای بشی بیستو دو همی خوید نوی کتب چشتی مجیوری هجاری مکریانی تا بشی که تر و شوتن شد.